ژن خودخوا نوشته ی ریچارد داوکینز پارویشتای فصل سوم مارپیچای نامیرا در این بخش گفته شد تقریبا غیر ممکن است کار یک ژن را از ژن دیگر جدا کنیم پاسخ من به معتقدان ذره گرایی ژنی در اینجا و همچنین در کتاب آمده است در واقع این یک پیش دستی است نپاسخ. پاسخ چون قبل از آن انتقادها نوشته شده است. متاسفم از اینکه لازم شده است اینطور کامل گفته خودم را نقل کنم. اما از قرار معلوم به راحتی بخشهایی مربوط به ژن خودخواه را می شود ندیده گرفت. مثلا در گروه های مراقب و ژن خودخواه در کتاب شست پاندا اس جی گولد گفته است برای جای مشخصی از ساختار بدن مثل کاسه زانو یا ناخن انگشت ژنی وجود ندارد نمی شود بدن را به اززای ریزی تجزیه کرد و هر کدام را به یک ژن نسبت داد در ساخت بیشتر قسمت های بدن صدها ژن نقش دارند گلد در انتقادی از ژن خودخواه این را نوشته بود ولی حالا با آنچه من نوشته بودم دقت کنید من نوشته بودم ساختن یک بدن کار دست جمعی و بسیار دقیق است داری که غیر ممکن است کار یک ژن را از جنهای دیگر جدا کنیم هر ژن چند اثر متفاوت روی جاهای کاملا مختلف بدن دارد هر بخش بدن تحت تأثیر جنهای زیادی است و اثر هر ژن بستگی به تعامل آن با دیگر جنها دارد و باز گفتم هر قدر ژنا در سفری که از میان می میکنند آزاد و مستقل باشند در کنترلی که بر رشد جنین دارند آزادی و استقلال چندانی ندارند آنها هم با یکدیگر و هم با محیط زیست خود همکاری و تعامل پیچیده و غیر قابل تفکیکی دارند عبارتی مانند ژن بلندی پا یا ژن رفتار ایثارگرانه در کلام چیز راحتی است، اما مهم این است که به معنای واقعی آنها پی ببریم. هیچ جنی نیست که دست تنها پا بسازد. چه کوتاه چه بلند. ساختن پا حاصل کار دست جمعی چندین جن است. تأثیر محیط بیرون را هم باید لحاظ کرد. اصلا در واقع پا از غذا ساخته می شود. اما شاید جنی وجود داشته باشد که اگر شرایط دیگر یکسان باشد نسبت به عملکرد عامل خود در این مورد پا را بلندتر کند. من در پروگراف بعدی با استفاده از کریاس اثر کود بر روست گند و موضوع را بیشتر شرط دادم. از قرار معلوم گلد پیشاپیش مطمئن بود که من یک ذرهگرای خام دستم. که های کتاب مرا که دقیقا همان چیزهای مربوط به تاثیرات متقابل بود و خودش بعد بر آنها تاکید می ندیده گرفت. گولد چنین ادامه داده است. داکینز به یک استعاره دیگر نیاز دارد ژنها جلسه می‌گذارند، پیمان میبندند برای امکان پیوستن به یک گروه ابراز احترام و محیطهای احتمالی را براورده کنند در قیاسی که با پاروزن داشتم دقیقا همان کاری را کرده بودم که بعدا گولد توصیه کرد نگاهی به ای مربوط به پاروزن هم بیاندازید تا ببینید چرا گلد با اینکه در موارد زیادی نظرمان مثل هم است در تاکید بر اینکه انتخاب طبیعی به خاطر هماهنگی اجزا، تأثیر متقابل چند جانبه و دادن امتیازات موجود برمیگزیند یا رد می‌کند، دچار اشتباه شده است. توضیح درست همکاری ژنها این است: ژن‌های برگزیده خوب هستند، نه به این معنی که در خلع و به تنهایی خوبند. به این معنی که خوبند که در خزانه ژنی و در کنار ژن‌های دیگر خوب به شمار می‌آیند. یک جن خوب باید با بقیه هایی که در یک عمد های متوالی با آنها همراه است سازگاری داشته و مکملشان باشد من جواب کاملتری به نقدهای زرگرایی جنی در کتاب رخنمون گسترش یافته بویژه در صفحات 116-117 و 239 و 247 نوشتم صفحه 28 تعریفی دا که من بکار کار از جی سه ویلیامز قرض گرفتم. واجه های خود ویلیامز در سازگاری و انتخاب طبیعی شنینند. من از اصطلاح ژن برای چیز دیگری استفاده می کنم که با بسامت قابل توجهی جدا و دوباره وصل می شود. را می به صورت هر اطلاعات ارسی تعریف نمود، که برای آن یک انتخاب موافق یا ناموافق وجود دارد که برابر با چند یا چندین برابر میزان تغییرات درونی است. کتاب ویلیامز اکنون به حق و به طور گسترده یک اثر کلاسیک شناخته می شود و از نظر زیست اجتماعی و منتقدان زیست شناسی اجتماعی به یک اندازه دارای اعتبار است. من فکر میکنم بدیهی است که ویلیامز هرگز خودش را مدافع یک چیز جدید یا انقلابی در مورد انتخابگرایی ژن به حساب نمیآورد من هم در سال مانند او بودم ما هر دو فکر میکردیم که فقط دوباره یک اصل بنیادی فیشر هالدین و راید نو داروینیسم در سالهای 1930 را مورد تأکید قرار دادیم. با وجود این شاید به خاطر زبان ما که انعطاف کافی ندارد بعضی اشخاص از جمله خود سوال رایت ظاهرا نسبت به دیدگاه ما که ژن واحد انتخاب است اعتراض کردهاند. دلیل اصلی آنها این است که انتخاب طبیعی موجودات را میبیند نه ژن درون آنها را پاسخ من به دیدگاهی مانند دیدگاه رایت در رخنمون گسترش یافته آمده است به ویژه در صفحات 238 و 47 جدیدترین نظرهای ویلیامز در مورد مسئله جن عنوان باید انتخاب در مقالش دفاع از تقلید گرایی در زیستشناسی تکاملی مثل همیشه تأثیرگذار است. بعضی از فیلسوفان مثلا ده لام هول، که سیترانی و په کیچر و میم همب و سین مورگان هم اخیرا در روشن ساختن موضوع واحد های انتخاب سهم چشمگیری داشتند. جای تأسف است که بعضی فیلسوفان دیگر آن را مقشوش کرده اند. توضیح در مورد این هر فرد یک واحد ژنی فوقلاده بزرگ است و فوقلاده موقتی. به پیروفی از ویلیامز من در بحث هایم بیشتر نتیجه تقسیم میوزی را طوری کردم که موجود زنده نمیتواند نقش همتاساز را در انتخاب طبیعی داشته باشد. حالا میبینم این نیمی از ماجراست. نیمی دیگر را در رخنمون گسترش یافته و در مقاله هم همتاساز و محمل شر داده ام. اگر اثر تکه تکه شدن میوزی تمام ماجرا بود، موجودی که به صورت غیر جنسی تولید مثل می کند مثلا حشری چوب ماده یک همتاساز واقعی یک نوع جن فوقلاد بزرگ بود اما اگر یک هشری چوب تغییر کند مثلا یک بار از دست بدهد آن تغییر به نسلهایی بد منتقل می شود فقط جنها به نسل بد انتقال می آبند. چه که در تولید مثل جنسی چه غیر جنسی بنابراین همتاسازهای واقعی جنها هستند در مورد یک هشری چوب غیر جنسی کل جنوم یعنی مجموعی تمام جنهایش یک همتاساز است اما خود هشره چنین نیست بدن یک حشره چوب به عنوان نسخه از روی بدن نسل قبل قالبگیری نشده است آن بدن در هر نسل دوباره از یک تخم تحت نظارت جنومش شروع به رشد میکنند و نسخه ای از جنوم نسل قبلی است تمام رونوشت های چاپ شده از این کتاب مانند یکدیگرند. آنها کپی هستند ولی همتاساز نیستند. آنها کپی‌اند به این دلیل که هم از روی یک قالب نسخه برداری اند، نه به این دلیل که از روی هم نسخه برداری شدهاند. اینطور نیست که دودمانی از نسخه ها را تشکیل دهند و بعضی کتابها جد بعضی دیگر باشند. ولی اگر از یک صفحه کتاب کپی بگیریم بعد از آن کپی دوباره کپی بگیریم و از کپی آن هم باز کپی بگیریم و همینطور ادامه دهیم آن وقت دودمانی از نسخه ها را خواهیم داشت. در این دودمان صفحه ها میتوان رابطه اجداد اخلاف را دید. اگر جایی در امتداد این رشته نقص جدیدی پیدا شود آن نقص در همه اخلاف ولی نه در اجداد وجود خواهد داشت. یک چنین رشته از اجداد اخلاف این ظرفیت را دارد که تکامل یابد به ظاهر نصفهای متوالی بدن حشره چوب دودمانی از نسخه ها به نظر می آیند اما اگر به طور آزمایشی در یک عضو این دودمان تخییری ایجاد شود مثلا پایی را قطع کنید این تغییر در آن دودمان ادامه پیدا نمی کند برعکس اگر شما به طور آزمایشی یکی از اعضای دودمان ژنوم آن را تغییر دهید مثلا با Aش ای این تغییر در آن دودمان ادامه می به این دلیل است که برخلاف اثر تکه تکه کردن میوزی میگویی موجود زنده واحد انتخاب طبیعی یک کم ساز واقعی نیست. این یکی از مهمترین نتایج این واقعیت قابل قبول همگان است که نظریه لامارکی ترس نادرست است. توضیح درباره نظریه مدوار از من انتقاد کردن البته نه خود ویلیامز یا کسی با دانش و آگاهی او چرا این نظریه پیر شدن را به پی بی نسبت دادهام نه به جی سی ویلیامز درست است که بسیاری از زیست شناسان به ویژه در آمریکا. اغلب از طریق مقالی 1957 ویلیامز چند انتخاب طبیعی و تکامل پیری با این نظریه آشنا شدند همچنین درست است که بعد از طرح آن توسط مدوار ویلیامز روی جزئیات آن کار کرد با وجود اینها نظر شخص من این است که مدوار جوهر اصلی این نظریه را در 1952 در کتاب یک مسئله حل نشده در زیز شناسی و در سال 1957 در یک تایی افراد بیان کرده است باید اضافه کنم شرح و بستی که ویلیامز به آن داد بسیار مفید بود زیرا لزوم مرحله‌ای را در آن آشکار می‌کند که مدوار به طور روشن بر آن تاکید نکرده بود یعنی اهمیت چندگرایی یا اثرهای چندین ژن و دال همیلتون اخیراً در مقاله اش پیری توسط انتخاب طبیعی بیشتر به این نوع نظریه پرداخته است اتفاقا من نامه های جالبی از پزشکان دریافت کردم ولی فکر نمی‌کنم هیچ کدامشان به نظرهای من درباره گول زدن بدن در مورد سندی که در آن است ارادی وارد دانسته باشند این مفهوم هنوز برایم خیلی نامعقول نیست و اگر درست باشد آیا از نظر پزشکی پر اهمیت نیست توضیح درباره اینکه فایده جنسیت چیست مسئله فایده جنسیت هنوز مثل همیشه جالب است. با وجود نوشته های تفکر برانگیزی، چون کتاب های گیسلن، جی سی ویلیامز، جی مینارد سمیت و یک مجموعه که معلف آن آرمی شد و بی لوین بودند، از نظر من در میان نظرهای نو از همه جالب تر نظریه انگل وی دی همیلتون است که جرمی شرفس و جان گروین، آن را به زبان فنی در جنس نر مازاد شرد داده اند. صفحه 45 دی این ای اضافی یک انگل یا به عبارت بهتر یک مسافر اضافی است. صفحه 263-264 رو هم ببینید. این پیشنهاد من که آن مازاد دی این ای ترجمه نشده ممکن است انگل منفعجوی باشد را زیستشناسن مولکولی گرفتند و بست دادند. نگاه کنید به مقاله ای از اورتگا و کریک و دولیتل و سپنتا با عنوان دی ای خودخواه. سینچین در دندان مرغ و انگشت پای اسب هشدار به من داده است که با وجود ریشه های تاریخی دی ای خودخواه نظریه ژن خودخواه و دی ای خودخواه در ساختار توضیحی که آنها را پرورده است نمی توانند چندان تفاوتی داشته باشند از نظر من استدلال اون نادرست ولی گیراست که از غذا او هم این صداقت را داشته که به من بگوید معمولا خود او هم همین نظر را در مورد استدلال های من دارد بعد از مقدمهای بر تقلیل گرایی و سلسله مراتب که طبق معمول از نظر من نه گیراست نه اشتباه چنین ادامه می دهد بسامت جن خودخواه داکینز رو به افسایش هست زیرا با تأثیری که بر بدن می‌گذارد، در تلاش برای بقا به آن کمک می کند. بسامت خودخوا خودخواه به دلیلی کاملا برعکس زیاد می شود. به این دلیل که هیچ اثری بر بدن ندارد. من متوجه تمایز مورد نظر گلد هستم اما نمی‌توانم آن را یک تمایز عمده محسوب کنم. برعکس هنوز دیانه خودخواه را مورد خاصی از کل نظریه ژن خودخواه می دانم که دقیقا چگونگی پیدا شدن اولیه تصور دیانه خودخواه است. این نکته که دی خودخواه یک مورد خاص است شاید در این کتاب واضح تر ببینید نسبت به نقل قولی که در صفحه 45 از دولیتل سپینتا ارتگا و کریک آمده است. ولی دولیتل و ساپرینتا به جای دینه دی خودخواه در عنوانشان ژن خودخواه را آوردند. بگذارید با استفاده از قیاس زیر پاسخ گلد را بدهم. بسامد جنهایی که باعث می زنبورها راه راه زرد و سیاه داشته باشند به این دلیل زیاد می شود که این طرح رنگ هشدار داردند است به شدت مغز حیوانات دیگر را تحریک می کند. بسامد ژنهایی که باعث ترهای راه راه زرد و سیاه در ببر میشوند دقیقا به دلیلی عکس آن است به این دلیل که این طرح رنگ نامشخص در شرایط آرمانی اصلا مغز حیوان دیگر را تحریک نمیکند در واقع در اینجا تمایزی وجود دارد قابل قیاس در سطح سلسله مرتب دیگر با تمایز گلد ولی این یک تمایز ظریف در جزئیات است نمیخواهیم ادعا کنیم که این دو مورد از نظر ساختار توضیحی که آنها را پرورده است متفاوت نیستند. وقتی ارگل و کریک دینه خودخواه را با تخم فاخته مقایسه کردند واقعا به نشانه زدند. تخم فاخته با شباهت زیادی به تخم میزبان دارد از زیر چشم در می رود. از غذا در آخرین ویرایش فرهنگ انگلیسی آکسفورد معنی جدیدی برای خودخواه آمده است به این صورت در مورد ژن یا مواد ژنی تمایل به ادامه یا گسترش ولی بدون اثر بر رخنمون این تعریف فشرده بسیار خوبی از دی این ای خودخواه است و شاید دوم آن واقعا شامل دی این ای خودخواه است به هر حال از نظر من عبارت آخر آن ولی بدون رخنمون مورد است این احتمال وجود دارد که ژنهای خودخواه و رخنمون تأثیری نداشته باشند اما بسیاری از آنها دارند این بسته به فرهنگ نویس است و میتواند بگوید قصدش محدود کردن معنا به آن DNA ای های خودخواهی است که واقعا هیچ اثر رخنمونی ندارند اما شاهد اول آنکه برگرفته از کتاب ژن خودخواه است های خودخواهی را شامل میشود که اثر فنوتیپی دارند ولی وای بر من اگر بخواهم به خاطر این افتخار که در فرهنگ انگلیسی آکسفورد آمده است بر آن خورده بگیرم. من دینه خودخواه را در کتاب رخ گسترش یافته صفحه 156-164 بیشتر شرط دادم.